میخواییم دعوت کنیم ازتون رادیو فیلم رو بشنوید قسمت ماخونه میستی رادیو فیلم علی رزا خمسه فاطمه گوگرسی عشقان اجتماع محسا هاشهی افشین سنگچار، سیامک اشعریون گیتی مؤینی نعیمه نظام دوست کامران فیوزات علی اخوان ناصر افتخاری در ما خونه نیستیم نویسنده فیلم طاهره تاهره ورکور موسیقی ناصر چشمازه تهیه کننده سید امید حسینی کارگردان شاهد احمد باتریساز محله با صورتی استخونی و کلاهی به سر در حالی که ساکی به دست داره از کنار سوپر محله میگذره صاحب مغازه شلوار سیاه رنگی به سند داره و سبیلی پهن داره و کلاهی به سر کرده و دستمالی به دور گردنش انداخته صاحب مغازه به نروز میگه سلام نروز خما. سلام علیکم خوبی شما؟ قربانه زمینمی نوزداد اسم شما خوب سر دونا افتاده این روزا ماله آها ایدو میگی شفالمون چش نداری ببینی یکی دو هفته اسم ما سر زبونش افتاده خیلی مخلصیم آقا آقاجو خیلی آقای خدا جنبه بده داشین نوروز خان به ادامه میده مردی از کنارش رد میشه نوروز خان بهش سلام میده نروزخان میرسه دم خونه سلامه. سلامه. پسر نروزخان همید سربازه و در حالی که لباس فرم پوشیده دم در استاده یا الله اه. سلام آبا. چه شان این چه وقت پادگان رفتنه من تو زر مرخصی داشتم امروز روز این چه سربازی که سربازش همش مرخصیه بالا نمیفهمم خب باید اله هم این دیدیم چی شو بابا بابا نروز خان وارد خونه میشه و پسرش حمیدن به دنبالش میاد و دره میبنده بلاخره میخواد بگی چی شد بابا آقا جو یک کلام به رانندهی میبوش که ما رو میابرد گفتم کارم برگ و بازریه مگه ول میکرم؟ یک ساعت و نیم با مطورش برگرم هسته با خورد و باکشیر برگرم بابا دمت گرم ولی یه چاپن شما نداشی باید ماشین درست درون بیایی قیافت اینجوری نشه یک ک <تصح> سرین نمیره همین فرش رو تازه‌شاستم ببین میتونی تا تو ادریش رو روبری رو بری؟ ببین ببینا جدیه کاشا چی میشه الا میذان. برو خاطگان. قالو، خیلی قالو، قالو. وای ها. میگم حالا. ببینا. خواهرات فهمیدن. چی چی؟ یعنی نفهمیدن هفتاد میلین تو ها پول مغازه بی زبونو ورداشون دفرار شده؟ نه میگی مگیر آخیر خدا رو شکر خیالم راحت شد نوروز خان مشغول صحبت کردن با زنشه ولی اگه نفهمدن ما به خاک سیا نشستیم و چهار دروغه دروغی نوشیم چی تو ازت نپرسیدم واسه چی اومدی سراغ زمین پدری که بفروشیش؟ آخه آفتاب جو درد و بلد تو سر من بخوره من از کجا بدونم چرا نپرسیدن حالا به جای این سآله بولن شوید چای بیار که کاشو تا اینجا با شطورت می بدم آبروش بیشتر بیشتر تمام اصدخونم داره از هم وا میشه جنم آبالی می که دست درده کنه میدونستم که حواست همیشه به من هست خیلی ممنونم عجب نروز خان استکان چایی رو بر میداره و سر میکشه و گاهی به همسرش نگاهی میندازه که خیلی ناراحته چی شد؟ حالا بعد این همه وقت که من اومدم خونه به جای خوشحالی باقو میکنی؟ این همه وقت؟ کدوم همه وقت؟ سالات ظهر دیروز رفتی؟ سالات ظهر امروز برگشتی؟ گفتم بعد از هفتش سال رفتی ولایت این فک و فاملا دورت کردن حلوا حلوات کنن زنگ نزنم مزاحمت زاهمت بشن چه میدونستم زلیل نمرداد یه روز نشده میندازمت بیرون بیپولی بد دردیه ناروز خواهد آقا خدا بیامرزم هم همیشه میگفت بیپولی مثل جزامه آدم همه رجت میبره نی, نی, نی, نی. دیمازه بله خب شیرین شد حالا زندداشت و خوهرات واسه زمین چی گفتن و اما همون شب همسر نوروزخان خان در حالی که داره آشپسخونه رو مرتب میکنه با پسرش اختلاط میکنه یعنی جفت اما سهم زمینشونو بخشیدن به بابا؟ حالا همچین شاهکارم نکردن اینقدر دارن که اصل کار اون زنموته که گفته صد تا رفت تا ترو برات بیزینس. اون بعد بابا چیکارش بکنیم و چیکارش نکنیم. هم گفته بهت زنگ بزن. ای ای ای ساله واسه من آدم شده. نوروز خان وارد اتاق باشه. آقا زشت آدم ادای مردمو در بیاره. از موقعی که برادر خدا بیامرزم رفت سیر ماشین و تیک تیک شد ستار ست شد گل عمو شد بغل من بزرگ شد امکان نداره که از گل نازکتر به من میگه من میدونم تو که از وقتی داداشت مرحوم شد خدا رحمتش کنه همش دوبار رفتی شهرسا اون ماشاستن تو رو میشنسه. یعنی که جا. خب ببین که الو اه سلام ستا جا ستا گل چه عجب یادی از پسر عمود کردی آخه، اه با من کار نداشی؟ ها بله بله گوشی گوشی با شما کار دار باش حرف بزرقشم چیه سلام گل امو آقا چه چطوری خوبی خوشیم با ما اینا نونوز خان گوشی تلفن رو میگیره و راه میفته توی حیات همون موقع دختر کوچیک نروز خان که یازده دوازده سال است از پله ها پایین میاد زن نوروز میره کنار دیوار گوش میسته اما چیزی نمیشنوه همگی میرن و دوگمه ی بلنگوی تلفن میزنن امو جان خواستم اه... بهتون اه... بگم یه زمین قیمتی بذارین و به هم خبر بدین اما ها اگر خط کردن و سامشون رو دادن به شما که بالا بکشین اختیارشو داشتن ولی من سام آقا جونمو چی نمیدم. یک سوم زمین مال ماسکه میگیرم ازن حالا درسته که مغازه فروختی نفتاد میلیون ها پولی شده رفت باشه باید عقلتون رو به کار مینداختیم دیگه ببینم پس اون همید چه غلطی میکنه اونجا آن امون ببین چی بگم خودتا با اون رو رو داری خانم ستار بود چقدر سلام رسون به شما گفتش که امون نگران نباشه همیشه درست میشه بابایی اون از کجا فهمید شرکت پولمونو خورده باید شما هم شد زن نروز چونش میلرزه و بغز میکنه ندیدی چونه شو؟ چه؟ باز رفت لبه هوز آقوره بگه همه خانواده توی حیات دور هوز نشستن دختر نوروز داره به مادرش دلداری میگه مگه من مغازه نداشتم مگه باتری سازی نداشتم مگه سرم بین 1000 تو کاسب بلند نب... منظورش منم بابا بله میدونم خوب خر نشدم وگرنه نه همه یه قلبی لک خونه که به اسمم کرده مثل مغازه دود شده بود رفته بود هوا یادتونه تو گوشم بیخوند آفتاب رضایت بده این خونرم بفروشی منو بگو میخواستم عروس بیارم تو این خونه تو خیر و شر مردم تو عروسی و عزاشون هر وقت رفتم اگه سرتر نبودم کمترم نبودم ولی حالا چی چی یه پسر بچه که تا دیروز تو خیابونا شلنگ تخته مینداخت حالا شووار به خاور ظلیل میکنه چی تمس که یادت رفته با هم تصمیم گرفتیم مغازه ر بفروشیم مشارکت کنیم تو ساز چهار تا آپارتمان بگیریم یکیشو بدیم هری، یکیشو بدیم همین یکیشم بدیم خانوم یکشم بفروشیم موضوع جدید بگیریم ها ای خدا آتیش بیفته به جونه سینکی که تو دو لباس دوست شوهر منمخشو خورد اون دم و دستگاهی که تا هر کی دیگههم بود گول میخورد دیگه چی برسه به این تا شاکی مامالی پس چرا گریت خیسی دسگال بدم میخواد؟ ای خدا منو بکشه که هر وقت دیزم در میاد اشکم در نمیاد پسر نوروز دستش صور میخوره و از پهنو میافته توی <تصفح> حوش یخ کرد زلیل نمی. هیچ وقت شما نمیزه من یه دل سیر گرید زن نوروز از جاش بلند میشه و میره چیمتا من نفرمید توی 25 سال زندگی ما داری و هر موقع ماما گریش میگیره اونم تازه بدون آش. چرا میاد تو حیار با گیم اتاق چشه؟؟ آفتاب مخاطب با محتاب سن نوروز اومده کنار پنجره ایستاده و زل زده به باغچه مادر خدا بیا مرزم نه گفت زلیلی نمیری آفتاب زیر سختی که میخوابی گریه نکن برو تو حیات گریه کن حیا و حیا آزاد و من حالا شما هم گریه کنین بعد تو حیات گریه کنی. داخل اتاق روی تختش نشسته و داره یه مجله رو ورق میزنه همید پاورچین پاورچین میاد کنار مادرش ماما خداوکیلیاین گل یا گودزیلاه بهتر ولدی بفرماید نه شوخی کردم خوشکله قشنگاو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> یه چیزای سرشب در مورد عروس اووردان و چیزا میگفتی چی بود آ آمام؟ اله که چی, چی کار چی بار چی برم خواستگاری دختر مردم چی, چی بگم بزر سربازی تمام شد؟ مدرکت که ندیدی مدرکی که ما جو به همین زودی دست آدم نمیدنم ام. بعدشم من همه فکرمو کردم هیچ کاری به درد من نمیخوره الا بازیگری چی چی بازیگری ببین من اصن قرت بازیه خوشم نمیاد ها من سر یه کار دولتی یه پول ماهیانه میگیری که وقتی رفتم خواستگاری دختر مردم سرمو بالا بگیرم بفرما بابات اگه حقوق ماهیانه داشت قصم چی چی بود واقعا یه آب‌بازی بود او مامان جا بز اول بر من برم یه فیلمی تو یه فیلمی بازی بکنم بعدا یه حرف رو بزنم این محمود هستش پسر عمه خاله بود چی بود پسر پسر برادر عروس خاله برادر عروس کاپری خودش به من گفت چی گفت در گوش من گفت چی گفت ببخشید <تصفيق> <تصفيق> گفت خوش تیپی، خوش قیافه‌ای، خوش هیکل از هر چی خوشی تو جمع شده. بیا ببریم دیگه چه بازی کنیم؟ نوروزخان از پله ها پایین میاد. جمع کن بسطه تو محمود کاپری محمود کاپری خجالت نمی‌کشی؟ فکر نکنم کن که خرگوزه آبه. جون بیا بریم بالا بشینیم. ببینیم بالاخره برای چه خاکی باید تو سرمون کنیم. یک قرون دیگه نداریم. خب بابا انجا چش همچی ببشیم هم صحبت میکنیم دیگه. نمیخوام اون بچه حرفی بزنیم که خدا نکرده نگران بشه این پهمین؟ نوروز خان این بچه خوابش و مرگش دورجون یکیه عین سنگ شده الان بشین دیگه بشین لا لا, لا لا خب میگه چکا کنیم چه میدونم بالا تو بگو حالا چی بگم یه خریدار زمین که گفت. میگو... تا دو هفته بعد عید نمیتونه به ما پولی برسونه از این برم موندن که این خرج مخارج چیزای عیدش کار کنیم رفت آمده مهمونایی که میخوان نهار و شام بمونن چه غلطی باید بکنه موندم خب این مهمونا خودشون باید عقلشون برسه دیگه تو این اوضاع خراب عیدیدن یعنی سلام خدافرف تمام یعنی چی سلام خدافظ مگه ما پارسا رفتیم کاشون گفتیم سلام خدافظ که اونا امسال بیان اینجا بگن سلام خدافظ سلام خدافظ حالا تو این فکرم که اینا رو یه جور جمع و جور کنیم ایدی برای های فامیل و دوستا چیکار کنیم مامانی بابایی میگم شما که از قرض گرفتن رو انداختنم براتون میاد بعد بر بشین تو خونه در رو به هیچ باز وازع اینجوری فکر میکنم ما خونه نیستیم ما میزارم میرن. نه؟ ما خونه نیستی، پس کجا کجا ببین کارم به کجا کشیده که دخترم که خودشو به خواب زده و گوش وااستاده میگه در به روی حبیب خدا باز نکنیم خدا قهرش نمیاد نه نمیاد مگه من بطری سازی نداشتم مگه مغازه نداشتم منظورش منم مامان اگه ادامه بدی خدا قهرش میگیره یا اذا میندازه تو دامنتا همین من جوون ناکام فردا که خواستم برم پادگان یاو مییفتم میمیرم حالا ببین زبون تو گاز بگیر بچه چیوخی کردم با حرف میزنی دیگه ندونی خرج کف چقده پسر نوروزخان داره نقشه روی دیوار رو نگاه نگاه میکنه نبردی سر میز دوره هم نشسته دل دارن صبحانه می‌خورن ما میریم مسافرت تو انتخاب شهرش هم مختارید همه جای ایران سرای من است آقا خجون ما یه پول داشتیم بریم مسافرت جو... جو... کاسه چی کنم چی کنم درس گرفتیم. خب می‌موندیم خونه خجالت مهمونم نمی‌کشید ها تو داشتی با این حوشت میخوای بازیگر بشی؟ نه دیگه نها کن توجه نکردیم. این صورت مسئله است جواب و دریاب یه بار دیگه تکرار میکنم ما میریم مسافرت انتخاب شهرش هم اختیاریه همه جای ایران سرای من است حالا یه جاش هم نباشه دو جاش هست از زلیل نمیری همین چرا؟ زود باشیگه اختیار غمزه میان آقا ما شایعه می‌کنیم که داریم میریم مثلا مسافرت مثلا نمی‌خواید بدیم اینجوری کسی هم نمیاد پشت در بمونه ها به که در مدت یک از راست میگه آما فکر خیلی خوبیه میشه بگه میریم دوبه آه. نه دیگه نشد یه جای باید بگیم که بهمون بیاد ما غیر از شهرستان خودمون هم دو دفعه تا اون جای دیگه نرفتیم رفتین بفهمو بفهم نرفتیم میگه پس نمیشه بگیم میریم دبی چرا دوبه جای قریبه میگیم بخوایم بریم کیش؟ نروز خون این خوهر زرای خانم. هی میره کش جنس میاره هی پوزشو بما میده نه هوایی جنوب هم نمیسازه شمال خوبه البته همین شمال هم واسه زیادیه ها نمیدونی ایدو شمال چه گرون بازاریه یه اتاق هم اون بیاد خیلیه بگر نه تو چادر بخوابیم چطوره ها ها ها و جچته سخن... از فردا شروع بندیم خوبه هنوز تو ای دو دو هفته مونده ها من که تو مدرسه پوز میدم این خبرو بین همه بچه ها پخش میکنم خوبه یارسخان قاشقو ویل میکنه تو لیوان چایی اومد سرم همان چه میترسیدم ماشاءالله چج از روش بلند میشه و میره مگه چوره دیگه ای هم داریم بابا ببین اجبار آدمو به چه دروغایی وادار می‌کنه. به این که نمیگن دروغ مادر من. پس چه چی میگن؟ خالی بندی. اونم از نوع مسلحتیش اون وقت بعد عین این, این دفتر تو خونه زندونی باشی. خورد و چی میشه؟ فوقش میذ از یه جای دور یواشکی کُلینونو سیب زمینی میاریم زکر میکنیم. مثل مورچه ها. اصلاً من سه روز باید خودم نشون نشومیدم میگم مرخصی نگاشتم برگشتم. کسیم که نمیاد منو ببینه. دوستم هم که میفیچونن. شما برو این جو راضی کن و اما نوروز خان پشت پنجره مغازش ایستاده و با حسرت داره داخلشو نگاه میکنه مغازه رو یوزل بزن به این مغازه دل مری کباب خورد. بابا فروختش رفت. ان شاء الله پولش میذنه به یه پارچه دیگه. بیا بریم یه چای بخوریم حال جه بیاد. بیا بریم. حمید در حالی که داره با گوشیش حرف میزنه با دوستش نامی سوپر محله ایستادن. سلام اوسه خان. خوبی؟ آ ما حمیدم دیگه. ناشتاختی؟ بابا حمید کاشی به سر نروس با توی ما فامیلی تی ما قرومت دارم منم خوبم آقا قرار زد مزایمت میخواستم ما مایه پایه چی داری تو با دست بالا تو بساطه تو بساط شخصی دیگه آره آخه نیست داریم میریم گفتم پول بون ندم علیکی برم بخرم سدار آره شمال الو الو چشوب؟ بکنم خط و خط شد تو این آدم کلی رو هم رفته خودش زای میزنه حالا بخبرین شمال سربازی چی میشه اضافه اضاف نخوری نه بابا خیلال دراحت محقصی گرفته. آقا دسته در نکنه شهرنده کرده ما باید میخریم این نهمین دفست باقدر نداشته این ای ردی ای رد. ای رد. ای رد ای نداشته ای. همه ایچیز خواهد خوبی؟ سلام خوبی؟ کارت خبر؟ جدی؟ سوالت رفته توی مغازه و با پیرمرد خیاط صحبت می‌کنه. آقا چه دست درد نکنه. قابل نداره. میگم نوروزخان اگه عمری بود، هدیه میزنیم میریم یه گوشه‌ای، یه سیب زمینی داغ و یه کبابی دور هم میزنیم ها؟ یه حالی میکنیم باور کن از وقتی تو رفتی صفام از این راسته رفته یاد اون کتلت های آفتاب خانوم بخیر یادت باشه عید اومدیم خونتون به آفتاب خانوم بگی درست کنه که زن منم یاد بگیره فکر خوبیه مونتا هیف ممکنه عید ما خونه نباشی ایشالا والا ای؟ ایشالله کجا؟ والله یکی از فامیلای آفتاب خانم کلید داده ما بریم شمال بودشون هم هستن اینه که عید خونه نیستیم که خدمت <تصفيق> باشیم شما خوشتون باشه؟ ما هم خوشی. دختر نروخاناند داره میره مدرسه و مادرش داره مشایعتش میکنه. پس چرا هم چقدر باز پنیر توش نیست؟ پنیر زیادی آدم رو خنگی میکنه مامان مامان امروز به همه بد های مدرسه میگم که عید ما خونه نیستیم خوبه؟ آره مامان خوبه. به ملی ها راضیه که گفتن کرد اصل عکسی کرو من منا به اون ک را که کل مدرسه میگه. هلی خب برو دیرت نشه با دفت بسلامت دخترک درو باز می کنه و راه می افته کند از دوستش هم دمی در منتظرش هم سلام سلام خرید یک نفسه کبران آقا تو قشنگه تازه خریده وای، راست میگه چقدر قشنگ از کجا خریدیشون؟ مرا مامان میگن که رفتیم شمال بتوشم شمال بله شمال نگاه کنید باهاش بابا آقای راژونو قلبی میام آصف زن نوروزخان اومده مغازه سبزی فروشی که با پیرزن همسری رو برون میشه همه خوبه آقای راژ برای من شبدین زیاد بریزیا سلام آقای راژ سلام نکنه اوه ماشالله اینا سبزی میخوان چیکار بابا شب عید دیگه سبزی یه سری فریز میشه یه سری مصرف صرف میشه تعجب نداره که امسال خیالم راحته از این دنگ و فنگا ندارم خیر ان شاء الله بله قرار امسال عید خانوادگی بریم شما ای آقای رشیدیم که ریس سبزی بیشتر بریم نداریم نیموره میگنده نیم کیلو ۱۵ دیگه نیم کیلو خراب میشه چه تو یا این تو بی خبر میخوین کشی ببری چی میدونم والله یک از دوستای نوروزخان پاپیشمون شده که الا و بلا بعد دو هفته ای رو با هم بریم شما مام گفتیم سنگ موف گنجشک موف خوش به حالتون به خدا والا ما که این دوستگیرمون نمیاد. حالا میگم آجی که میخواین تشریف ببرین ویلام داره. آره بابا ویلا به چه بزرگی میگن دو کلاش یک کلاش رو به جنگل یک کلاش رو به دریا. جای شما واقعا خالیه. میگم حالا نمیشه مام باهاتون بیام؟ ببخشید خیلی کار دارم باید برم خیلی خورد بیزارم خدا دارم. خانم باشی سبزی تو. خانم کاشی بابا آقای را داد میزنی؟ گوشم کر شد. با تو همدم. میگم این آفتابو میشناسی؟ زن نوروز باتریساست. دارن کشیفشون میبرن شمال آفتاب میره و پیرزن همسیه گوشی تلفونش رو جواب میده و بله حمید پسر نوروز با دوستاش سفار موتور شدن و اومدن دم در خونه سلام سیمی خانم به من حمیدم پسر آفتاب خانم سلام پسر نوروز با اتفیسا زهاش حریر میخواستم میرم رامین خونه است اه ماما با خوب خیر باشه. خیره باشه چشه وای رو کول کردی. آخه نابغه این حمادم چرا رامی؟ چشه دیگه بچه‌ ببین با معرفتی همیشه وای منو داشته. ما که چیز زرداش نگیدیم. خب شما فهم کنین. منو به چشه دیگه‌ای نگاه می‌کنه. الو سلام سلام چطوری؟ سلام علیکم. بذارتون پارسال دوباره شو حالا چیز اصخت پارسال هر دارن اصخت. الان اومدی؟ نه بابا مگه خر می‌خوام و جویده. آقا ما داریم میریم ویلای دوست بابام. هی بله. کارامیا شلون؟ خوشحاليتي؟ می‌خواستم ببینم لباس ورزشی، مایویی، سرویس شنای چیزی دستبالت نداره یه چند روز ما قرض بدی؟ روزش دست پسر خاله‌ش نوروز جان. ها من بودم گوش وایسادی؟ نوروز کدومه؟ حمیده. او بیا تو. ببخشید من می‌خواستم سر دو هفته دیگه نرا پول بدم بخرم. با اجازه. ببخشید. خداحافظ شما. میم. خواهش می‌کنم. خداحافظ. مرد درو می‌بنده و میره. همون شب تو خونه نروز خان همه مشغول خوردن شامن بح بح. یعنی در طی دو روز کل سردمدارای خبرنسانی خبر شدن دیگه کاش میموردم و همش همشی روزی رو نمیدیدم بابای امروز توی وجله دوستم یه شرق پیدا کردم خیلی قشنگه بخونم براتون راجع مهمونه ها بخون بخون مهمون داره بخون بخون لطفا توجه کنی صدایی کوبه میآید ولی تاتا شده پنهان چرا؟ چون نیز در صفره مرا قوتی و قرس نان. خجالت می کند محدود مرا هم رفت و هم آمد وگرنه نیز نیست تردیدی حبیب خالق است مهمان چه کسی دفت نمیان؟ کی سر بوده؟ حمید در رو باز میکنه یه زن و مرد و یه بچه دمه درم مگه ما میمون نیستیم؟ برو بقید همه ببینم آقا جهاندار داماد همه بابا که قرر کرده بودیم خود خودت خودشم بابا اینه خونه نیستن؟ صابت خونه سلام زن وارد خونه میشه و مرد هم دنبادش بچه رو می دن حمید حمید در رو می و میره تو اتاق و اما همه سر میزش هم دوره هم جمع شدند. همون موقع شیطون اومد سراغ من منم اومدم سراغ شما یادم گفتم باطری دست دور ما منوزی دست به سر روش کشیدی و انداختی را تمو گفتم و رفتم تا اینکه مهندس اومد مهندس خاله زدمی منو میگه مهندس مکانیکیه هرچی اون خاطر بچم بوزیکو کاری نمی کنه بیا بیا بیا بگم اون نت برام آقا آقا مهندس وقتی که اومد اونجا جوش کنیم خیلی سوزناک مهندس میگه خاردم اومد ببین وقتی مهندس اومد ماشینو گفت ای دل غافل دل شکستی بد جورم شکستی آقا باتری دست دوم نیست نوع آچبند حرف نداره این دینامته که دیگه برق نمی رسونه این دل که نفسهای آخرشه آقا ما اینو شنیدیم شور شور عرق ریختیم شر شور عرق ریختیم اما چه فایده اگه همه آدم ها اینه هون من وقتی اشتباه میکردن میومدن ازخایی میکردن میومدن اقرار میکردن الان همه دنیا تو سلح و صفا بود آقا جهان خیلی آقاست همه این قرور غرور قرور نذاش افتر غرور. غرور قرور, قرور. قرور. قرور. نذاشت <تصفح> ای خورمونه به گلم برم یه گاز بده اقو ببینه ها اینکه این این این این ما شما میخوایم شما با کی با دوستان آنور بود گفتم تو نورسان که هرچه میره ایدو با خودش میبریم خب چیلو ما بباشیم نینجا بابا بله الگسر یعنی کشم ما هم با خانوم آغازاده بلند شدیم اومدیم اینجا که بگیم اولندش ما رو ببخشید دو ما رو با خودتون ببرید شما تا خدورت ها رفت بشه که چی بشه زندگی شیرین بشه آبای راستش خیلی خوبه که شما بعد از دو سال تا شنیدین که ما به خرج کسی دیگه و ویلاشو میخوام بریم شمال تشریف بوردیم هم تا قدمتون رو چشما ولی یه مشکل بزرگ هستش این آقای بهروز بهروز بهروز شایان بهروز شایان کیه دیگه نوروزان آه. خب اون گفتی بهروز شایان دیگه بله دیگه اون بهروز شایان خیلی آدم بداخلاق و بدانق و خیلی خیلی آدم قاطعیه بله بله و خیلی هم سخت میشه باش ارتباط بقرار کرد راست میگه یک مالی کرخن ناسیه که نگو اصلا ما داریم میریم اونجا ما حسن خور باش آقا جو صبح نروز از قدیم گفتن همه غریبه ها یه جوری با هم قوم و خیشن ما چیزی نشنگه بود؟ پس چی؟ باید باش خوب رفتار کنیم دیگه منم تو فامیل خوشتر زبون اونه پسش برمیام تازه قدیمی ها دوباره گفتن اگر دم ما له نکنی نیشت نمیزنه که این من صفحان شهیده بوده ولی شنید شما باشین تلفن رو بیارین بزارین جهان باش صحبت کنم اگه بعد پنده صحبت کردن نگم اصلا شما بو آغاز داده بو افصال خانم تشریف بیارین آخا نروز سال واسه سال بعد دل تو به من بگین همون شب آفتاب میره داخل حیات و متوجه میشه که در خونه بازه شیر چرا باز که بازی کجا بودی؟ رفتم اشکالای رو بزن جده ده بابت کو. راحت بود رفت تو پارک خودو فکر کنم دوی برش بمیرم برو رو رو شب کجا مامان کجا کجا پارک دیگه با این باز با این لباس ها اه اه اه اه ی روز نشسته روی یه نیمکت و در حال گیری کردنه که آفتاب و حمید میان کنارش شب نالهم چونی نی... که ترمی دوراد کهانی دور نابینان قامتت مرد بخشید مادر اه. اه. سلام بخشید سلام آدم باز سंगे زیرین آسیا باشه تو زندگی میدونم ولی نمیتونم مجده بدی, یه فکر مجده بدی یه فکری کردم ها بدی یه فکری کردم چه بکره فکری آه. الان که رفتیم خونه به این جواندار رو زنی میزنیم میگیم که این آقا بهروز بهروز بهروز شایان بهروز شایان دیگه بابا بهروز شایان نورالله بهروز شایان خب این آقا بهروز شایان اینه شما فکر که بابا بهش پاتیه کهنه انداخته واسه همین منصرف شده ما رو ببره شما ها ها آهان آ یاهان خب اومدیم اون نقشه‌مون گرفت بعدش چی آه؟ اید ما خونه نیستیم خب منو حریر فکه اینجاشم کردیم دیگه عین این, خب. این چنوز چرا می‌ندازیم که ما میخوام بریم جنوب خونه یکی از دوستای سرباز من خب اگه بازم گفتن ما چی؟, چی بابا بیخیال دیگه خب میگیم خونه ویلای نیستی خب هست یه خابه تو کجا اومدی چی میگه اینجا سره بودم ترسیدم گفتم روی باز بود اسلام عزیزم روی زلیر نمیرید آخه کلیت نداریم که باش همید از دیوار بالا میره و میپره توی حیاتو در خونه رو باز میکنه امروز روز نوروزخان رفته بالا یه نرده یا پاش دستشه و دخترش داره ازش عکس میگیره آقا چرا این بالا خیز؟ آقا گفتن با کاریکاتو آه این ها از مشکلات جامعه است. شما این چهست رو بزنیم؟ چرا؟ یعنی شما با این سن و سال و قیافه دماغتون رو عمل کردی. دست در نکنه، حالا بابایی زشت شد عوضش من تو مصابق شرکت میکنم جای آخه چرا اگر شما تکون بخوریم من با هم کلاسی ها فیلم 24 هایی گرفتم که از این 24 فقط دو تا دو منه حالا اگر این فیلم ها یا خراب بشه بعد پول همه شما هم بدم جایزه اومده نروز خان میره دم در و همون مهمون دیرشبی پشت دره بعده بعد آقا نوروز گل گل سلام علیکم خوش اومدید আচ্ছা کی آقا دیشب راجب دعوایی که یک ساعت بعد از رفتن ما با بهروز شایان کردیم خب به جون آقا نوروز من و افسر خانم و آقا زایده خیلی با هم فکر کردیم روکه. خیلی فکر کردیم ممنونی تو این فکر کردن ها به یه راه رسیدیم که اگه بشنوفی میگی ای آها, آها. خب حالا چی منو شما و این خواجادی خانومم بود که مهندسه میکنی که پا میشیم فردا میریم پیش بهروز شایان اون وقت چی چی این خواجادی خانومم که مهندسه میکنی که نظر میده که این ماشین از اول قزمیت بوده باتری هم هیچ اشکالی نداشته اون وقت چی شما تبرئه میشی اون رسوا اون وقت ما سوار و خر مراد آی نی تازونی ما خب وازه نه تنها ما و شما بلکه دو خانوار دیگه هم می‌تونیم با خودمون راهی شمال کنیم آقاجو شما جهانداری یا میاندار جهاندار خدا پدرفه بیاموز دعوای ما فوش و فوشکاری نبوده که آجو. هم کتک کاری بوده آقا همدیگر کتک زدیم لعنت به این آدم بیمعرفت ای لعنت پس این چسبی که رو دماغت اثر سر که این بابا خوردیم چسب ها باله. نه شد نه شما برو تو آره نه شد, نه شد. نروز در و به درس حکم میده و بعد چسب روی بینیش رو بر میداره بله بله میجم آقا نروز ناسلامتی ما قوم و ما از قدیم گفتن چی؟ چی خیش آدم چی بهتر از دوست آدم می زاده ده نه دیگه خیش آدم دوست اجباری آدم است. بله بله بله بله پس امروز غروب چی چی این بابا که رفت تو خونش و همه دورش گرد آمدن ما هم لشگر کشی میکنیم حمله میکنیم تقاس این دعوایی رو که با تو کردن و ازشون میگیریم آقا جو طرف خیلی گردن کلفته نمیشه باش درگیر شد از خیش بگذر من گذشتم تو هم بگذر با غیرت جردن گرفته نشد پس شمال ممال مالیده کاملا خیلی خوب شما برو تو خدافده خدا نگه روز عصبانیت در میبنده و دوباره میره بادای نرده بوند در حالی که چسب و دوباره چسبونده رو یه بینیش و آب تو دست دشه بله بله اومدم اومدم حال آقا چسب چونه نوروز یه لحظه فکر کدم چسب و دواقت نبود میگم آقا درسته این خواهزاده خانمه مهندس که. آقا ولی چی؟ خب چی؟ اون که درسش تموم نشده خب میشه بگه آقا میگم نکنه اون اشتباه میکنه و راستی راستی باتری شما یه مشکلی داشته بله داشته آقا خراب بوده کهره بوده دست دوام بوده غذاب میده بابا حال بگیر دیگه اه این اکس پرماجره گرفته میشه آفتوب زن روز داخل نومبایی داره با همون پیر زن همسه یه درداده میکنه نونا مشکل دارن نه ببا منتظر سرایه خانوم هم نکه گفتین همروز نای ببین من دو ساعت باید سرت واسه با سلام سرایه خانومی نومت ببینم چی نونایی برش دست در نکن آقا سوره خانم شما رو می میشاست گلسازی ولت باشه گلسازی نبالا ما با این همه گلای تبیل رنگ و بارنگ ریخته رفتی سراغ خمیر و قتیشو نمیدم پارچه و اینا رو میخوای چیکار گلدوزی و ترمدوزی و این حرفا چی چی مثلا اصلا این چیزان ندارم حاضر آماده میگم میخرم یا خواهرم از کیش خارج برام میفرسته چه بد شد حالا چی چی ببرم واسه دوست حمید تو اه جنوب اه. که عید ما رو دعوت کرده بریم اونجا. اه شما که گفتین می‌خوام برم شمال. چی شد حالا می‌خواید برید جنوب؟ چرا؟ میخواستیم بریم شمال ولی میگن هنوز سرده. اینی که گفتیم بریم جنوب هم گرمه هم نزدیک کیشه ای شد. نه اینکه شما خوش سلیقه ما شاءالله بود از شما بپرسم. سلاما. پس سلاما بفرمایید. خوب دیگه خدا سلام برس. آفتاب رو جمع میکنه و میره و طبق معمول پیر زن میمونه و تلفن همراهش و خبرها نروز و حمید دارن با چوب پنبه های یه دست میکنن کرونه میده به زنش که به حرف زن بده موش به حرف زن بده سوار میشه رو گردنش، خدا چیکارش بکنه زن و داد به منش اون شده است مرد خونه من شده هم تا بزنش دست ننم در نکنه آی حمید خان یالا یالا تمری نبشه بابا کجا سرشب شیکم گوشت ما رو ورداشی نارو رو بنزین تو عید که چی بشه خیلی سرم واسه چلهای صدامون استراحت کن من نیفهم ای کسی میخواد بیار الکی براش اینا ورداشی تو تو عیاد آقا ما رو بده نیاد مادر مگه دورا جون منو بابات خودمون آدم نیستی خونه تکونی رسم خوبه که اگه نکنی تو سال کوهنه میمونی هیچ جنب به دلت نمیچسبه. بگی. اِ مامان، اصلاً فقط سه تا چای ریختی. من چی؟ چای شما تو قوریه برو واسه خودت بریز بخور. دست شما داد نکنه دیگه. یعنی من آدم نیستم؟ دوران جون، مادر جون. بابا تربیت این بچه کار کنم. سلام علام نمیگه. وقتی میاد دارم به این فکر کنم که الان فک و فامین حسرت این رو میخوارم که ما داریم دور ایران رو میگردیم <تصفيق> <تصفيق> آباجی کیه؟ به چه گفتیم بیا؟ باید در رو باز ببین همین به طرف در میره و در رو باز میکنه مرد مسل و یک دختر جوان کشته سلام خیلی خوش سلام. مدتی ما تو به اون خیره میشه و کمی بعد همه داخل اتاق تأثیر و شلوسانم جان عوض شدی فکر کنم یه سال از حمید من بزرگتری نه نمیدونم والا ممنونم من چایی نمیخواهم آقای کاشی خلاصه این که مامان به آقا رحمد که بابا باشه گفت میبینی رحمت ما از چند سال پیش که کمک کردیم یا با آمابان گرفت تا حالا ندیدیمشون یا مامان به بابا گفت تا اینکه دوباره مامانم شمید سفر شمالتون به هم خوده تو دوماد عموم آقا مرتزو به مامانم گفته بود آخه حمید خان زنگ زده بود بهش اینکش ازش خواسته بود که میره جنوب تو هفته بزنه واسه دو هفته دیگه نره بخره مامان بابا هم تا اینو شنیده این گفت خدایا بزرگی تو شد شانس شانس سنب ماست یعنی من بله به سلامتی کارشناسی ارشدش. داره راجع به رسم و رسومات عید مردم جنوب تحقیق میکنه اینی که گفتیم همراه شما بیایم اونجا و سنم از دزدیک با مردم اونجا حرف بذار خب به سلامتی کجا جنوب میخواییم بریم خب ما همه جاش میریم به خصوص بندراباس و کیش بای چه خوب اتفاقا همون جه مده نظر منه چقدر عالی شد بله و چی شانسی داره این سن، سنم خانم میگم چرا به فکر خودمان نرسید که ببریمشون اصلا جنوب بدون خانواده محترم اروجنی اصلا لطفی نداره <clearer self> متشکرم خیلی ممنون بله نه عرض میکنم وای چقدر خوشحال میشه دوستم میگم که خانوم باستاد همراه خونوادش از عیدشون گزارش تهیه کنن بله. درسته ماما؟ بابا؟ حریر؟ بله خب حالا دیگه موقع رفتنه ما ماشالله هزار ماشالله چون خودش کار داشت و نتونست خدمت برسه اینه که بنده رو نماینده خودش کرد و فرستاد که بهتون بگم تا دیر نشده و تنور داغه نونو بچسبونی نون <تصفيق> <تصفيق> خیلی خوب جواب و موعد حرکت دیگه با شما ما منتظر بله اون از ما حتما حتما سلام. خدا مهمونه میرن و حمید و مادرش که اونا رو مشاید کردن توی حیات ایستادن رو دارن پیچ پیچ میکنند که بدون خانواده اویجنی نمیشه ها دوستیدم خوشحال میشه که خانم با سواد از عیدهشون بره فیلم بگیری بله مامان، خب مگه ندیدی تا رسیدن صحبت وام هم پیش کشیدن اخب مدیونین به باباش دیگه آقا ناسرامتی رئیس عبدالخونه یه بانک بزرگ ولی عوضش فکر کنم مامان چه رو پیدا کرد مبارک زن نوروز دستشو بالا میبره تا بزنه تو صورت پسرش اما پشیمون میشه و میره داخل خونه نوروز خان روی نیمکت نشسته دستمونی رو جلوی صورتش گرفته و داره گهریوزاری میکنه که پیرزن همسایه اونو میبینه اه. الهی من بمیرم برودر با این صدای قشنگ داری که ادایی میکنی خدا هر همه خدا به حق علی خودش کمکت کنه ای داد بیداد شانس تو یک قرونم پر ندارمش کاغذ است میگم برادر من همینجا بشین من برم یه خود واسه شینی میبینی آجیلی چیزی خونمون همینجا نزدیکه بردارم بیارم انجا تکون نخور یه خود لباس هم هستش لباساش همه نوها قاهارام از کیش خارج آورده برات بیارم همینجا میشین اومدم تا پیرزن به طرف نین میره نوروز خان ازش بدغن میشه و فرار رو برقرار ترجیح میده یعنی کش حمید پشت در خونه ایستاده و داره در میزنه. هیچ کسی درو باز نمیکنه. بابا چیزی که فدای پرمون فکر که چرا دیگه میزنین ادمو؟ واسه او حرید مگه تو همه نقشو هم دست من نبود؟ چرا اونو نمیذازین بیرون؟ کمی بعد در باز میشه و خواهر حمید هم به زور از خونه بیرون میره. بابا این چرا دیگه واسه چی میذازین بیرون؟ آه. حمید با عصبانیت به گوشه حیات میره خواهرشم هم به دنبالش میره و میگه حمیدم دادوشی بهشون بگو با همه بگم میریم کاشون هیچ کسان رو بگه که منو با خودتون ببریم ها همه پیشی های محل قربون خواهر خوشگل من برنگ که فکرش هم این خودش خوشگله ولی من به دوستام چی بگم کاری نداره هیچی میبگم چی بگی صافیرو سه بعد دختر نوروز در خونه رو باز میکنه و به همراه همکلاسیش که دم در منتظره روی مدرسه میشن. ما میخوایم بریم شمال بعد نشون. بعدش هم رفته میخواد بریم جنوب اونم نشه. حالا دیگه تصمیمم عوض شده. میخوام بریم کاوش شهر استانبول. یه دفعه دخترک با دست دختر نوروز رو هل میده طرف دیوار و بعد همراه بغلی هم می همکلاسیش به راه میافتند. ولی دختر نوروز همینطور طور تکی داده به دیوار. اما چند تا جمع شدن مقابل سوپر محله و با گوشی تلفنشون مشت خودن به اونا نزدیک میشه و شیرکا کابایی توی بقلش رو با اونا صارف میکنه یه دفعه گوشش رو کنار گوشش رو با عجله از اونجا دور میشه حای وانده بده است و در حالی که داره آواز میخونه، از دادگوستاری بیرون میاد و به خونه میره. تو <تصفيق> رو میخوام، تو رو میخوام وگرنه یار بهش یار. تو رو میخوام، تو رو میخوام وگرنه یار بهش یار. گل گلو میخوام، گل رو میخوام وگرنه خار بهش یار. گلی می خوام که در سایهش بشینم مگر یه دیوار به یار نبینم غم تو آفتاب خانوم خانم خانوما زن نوروز در حالی که جاروی دستی کنارشه روی تخت میونه حیات نشسته از دادگاه که رفتم دوباره گفتن هیچی چی بی چی اینو ازایاله بنده که اصلا تحویلمون نمیگیره خیلی خوب بس بمیرم دیگه نوروز رو به روی دوش آفتاب میندازه ولی آفتاب به حالت قهر از اون رو برمیگردونه نگو آفتاب به من نوروز خواه. چرا؟ بگو ابر بهار بگو ساقیقه من چقدر بدبختم نوروز خواه میداری چی هستن؟ نه, نه اسم تو بهت میاد نه اسم من <تصفيق> اسم تو رو باید لیزشتن کهون روز چه میدونم تیر روز آره بالا به من هم میگفتن سایی، خروب. نه نه آفتاب <تصفيق> اچه مگه من مغازه نداشتم مگه من بادرسازی نداشتم منظورت منم میدونم خب حالا بگو چی شده خانم همین دیگه چی شده رفتم دامن دکونه نووائی هرچی منتظر این سورایی مرده شدم نهی موقعی دیدم تو دکونه خیاتی خب به بونه تصادف دوست حمید رفتم و دوباره حرف پاس پس گرفتم خب نمیدونی چی کار کرد که نه ابروشو بالا این و این خندید و گفتش که از اولش معلوم بود شما هیچ جا نمیرین میرین ولایتتون خونه خواهر شوهره <تصفح> آبرو مجرمه قاسم خیاط بود هی باب میگم نوروز قول میدی وقتی پولامونو پس گرفتیم منو ببری شمال آقا تو دعا کن پولمون زنده شه شمال که سهله کل ایران میچرخونمه حالا پس به دل نگیر ناراحت بودم دلم گرفته بود پر بود و همجوری گفتو اگه نگم به کسی دلم میپکه خدا رو <تصفح> <تصفح> <تصفح> میگم تو هم به دوست موساد گفتی میریم شهرستان آه. یه جا گفتم، یه جا نگفتم خدا میدونه چی گفتم، چی نگفتم، چی گفتم اینا چی اینجا؟ کندی آوردیم پای اینا عکسای هنرفشای حمیده قالیش رو بردم بهشو رفت گفتم اینام بیان زیرون یه هوایی بخورم <تصفيق> خواستش رو قنبرک بلنشیم دوتایی اینا رو بشوریم دیگه منطقه باید مواظب باشیم هنه اپشای خیس خیست نشن وگنه دمار از روزگارمون در میاره آف تا با یه دفعه نوروز دستش میبره میبره توی کاسه آبی که روی تخته و یه مشت آب میپاشه روی خانهش زن نوروز با عصبانیت از روی سخت بوده همیشه با نوروز رو دنبال میکنه نوروز دوباره آب میپاشه به طرفش و اونا دور حوز به دنبال هم میدوند زن نوروزم از آب حوز میپاشه روی سر و صورت نوروز و خلاصه یه آببازی حسابی برای دختر نوروز با دوستش تو راه برگشت از مدرسه است دختر نوروز کنار سوپر محله از دوستش جدا میشه و با عجله به طرف خونه میاد و وارد حیات میشه نوروز زنش داخل خیلی خیلی سلام مامان سلام بابایی یه آقا کی رفمیدم کی بود دایی هست اینجا فکر کنم میخواست بگه منم با خوشبختم این کاش خون از کجا فهمیدین یاوالفز ناشختهش نه طوری که ندی نه توش طالبون خودش میپرسید که من دویدم اومدم اینجا مردی که کت و شلوار سرمه‌ای رنگ پوشیده و کیفی به دست داره به برگی توی دستش نگاه میاندازه و زنگ می میزنه نوروز در حالی که پارویی به دست داره آهسته به طرف در میاد و گوشش رو میچسبونه به در دیگه صدایی شنیده نمیشه. نوروز به همسر و دخترش اشبابه میکنه که به داخل در همون لحظه سراکله یه مرد که از بالای دیوار خونه سرک میکشه پیدا میشه مرد که به سختی خودشون و به دیوار نگه داشته میگه سلام علیکم سلام علیکم آقا شهرمنده اجازه بدین در باز کنن؟ نبخشید شما اون برای شما میکنید ارز میکنم که شما آقای کاشی هستین بله بله پس چرا در رو وزنه میکنید در زنگ میزدی؟ بله هم در زدم هم زنگ زدم یعنی نشنیدین آه ما خواب بودیم با گروم گروم های شما بیدار شدیم بله خواب بودی ماشالله چه آماده باشم استراحت میفرمایید شما خانه بده که این رو خب این که بله،, بله بله من ارز کنم خدمتون که ساله هستم از دوستای آقا ستار که بله نه خیلی شنیدم شما یه زمین دارید درسته؟ زمین؟ بله. اجازه بدید شما بفرمید تو تو برسو دفتر اجازه لیلی بچه برد تو دیگه بفرمایید خواستم ببینم حاضریت با سرواهی که من زمینی که شما داری، خب. یه پردارش قارچ خوب را بندازیم و هر دومون سود ببریم قارچ بله قارچ آقا جو همیشه زمین با آسمون که نمیشه جواب داد باید فکر کنیم ها؟ خب. بعد خدمتتون عرض نرز میکنیم حالا سودش چطوره سودش, سودش که عالیه. میتونی تحقیق کنید البته من قبلا یه سری تحقیقم کردم اینجاست میتونید ببینید ارچ من تشی برین پاین الان میام خدمتتون از اومرد درو فقط باز کن. مرد باكتو نشون میده و بعد از ی دیوار میفته داخل خیابون و اما روز بعد نوروزخان باز هم از دادگستری بیرون میاد و کنار خیابون منتظر تاکسی میشه گتا کدش رو از جیبش در میاره و نگاهی میندازه و بعد تصمیم میگیره پیاده بهراه بیافته پسرک فالفلوشی جلوشو میگیره کمی اون طرف تر مردی که چهرش رو سیاه کرده در آنه آواز خونده مردی اب اینجاابش بالاخره دست میکنه توی جوجلو شد کی رو بیرون میاره و از پسرک که فال فروش یه فال میخره و بعد در پاکت رو باز میکنه. فال اینطور اومده رسید مجده که ایام غم نخواهد ماند. رسید مجده که ایام غم نخواهد ماند. شدن نماند و چونی نیز هم نخواهد ماند. من عرشی در نظر یاد خواب ساو شده. رقیب نیز چونه نخترم نخواهد. نو روز وارده خونه میشه. در خونه بازه و مردی در حال فیلمبرداریه یه دفعه مردی تاست با سویلی پنگ به همراه مردی جوانتر از داخل ساختمون بیموند سلام درستان قصه به خونه عقب افتادی به اومدن هرام؟ نه بابا آه... آقا, محمود ده ده؟ آقا, آقا, آقا محمود کیه کی؟ آقا عباساله آقا محمود کیه؟ برادر عروس خواهرام. هاپری؟ <تصفح> آره, آره آره آره. خب، با میخوان فیلم بسازن. میگه اینجا بشه لوکیشن. توزه مادر حبی المپلی شام بیا. سلام آقا نورشاخ. سلام حال شما. خوشوالم خوش از دیدن. احوال شما. بباشید. خانواده نورشاخ. سر مقدمینم سر اسمد. آقای احمدو کارگردان کار هستن. بله. خانم عزیزی طراح و آقای جودی دسته اول کارگردان. شاکر شما اشعيون مدیر تولید. امرتون چی؟ شورا. براش دراسته، دیروز حمید آقا اومدن دفتر. حمید آقا کیست؟ حمید آقا ما. بل بل بل بل بل بل. برای چی بابا چی خونه نیاز بریم؟ خیلی طرف خونه شماره کردن. برای بعد ما با اتفاق بچه‌ها اومدیم یه بازی می‌بکنیم که اگه ان مورد پسند بچه‌ها قرار بگیره، اینجا برای نوکشر فیلم مکتب لوکیشن چیه آقا؟ همینجایی که می‌خوام فیلم بسازم خونه ما. من عزم می‌خوام ما اصلا شرایط قابل نداری. حمید خوش. آقا خان با عصبانیت 사인 میکنه همه از خونه بیرون بکشه همه رو از خونه بیرون میکنه و در رو میبنده توی را کارگردان فیلم مشغول صحبت کردن درباره نوروز خانه بابا تو که میگفتی این خیلی آغاز این چه طرز برخورد بود شرمندم نوروز قدیما اینطوری نبود نمیدونم چه کاری کرد ملاص حماتم مزل گفت. البته حیاتش خیلی به درد کار ما نمی کوچیک نبود؟ خیلی هم کوچیک. یکی کوچیک نبود. خانم از این. ولی یه خوده رو قبول داره. ولی فزلاش به درد ما نمی خورد. جا کار داره. یه بار کارگردان تشویق دادن. شاید جون خیلی اونم یه خونه گیری اونم بود که داخلش خوب بود. زیاد به حیاتش گیر نده دیگه. ما که یه سکا سرمصه بیشتر کار نداریم که اینجوری می‌خوایم لفتش بدیم کار به اد نمی‌رسو. گفته باشه ما شاید جا زیاد فکر نکن تو بگیر من جبران میکنم چطور جبران میکنی آقای اشرون چندتا هنرور میخواستی اگه میدادین چلتا اگه من شستتا ورت میارم هم عروسی گرمتر بشه هم شلوغتر بشه ما... شب همه دور میز شام نشستن زن نوروز داره سرر میشینین ماما... همه از خودشون اینا یه نگاه بندازن بهشون موقع ببین ما با اینا چقد بدتا به خدا از زور تو حالا دارم از خجالت آب میشم تازهشم بابایی آقا پول فقط پولیمون بدن پول بدن مطمئن یغوشم دیاروش... چیخه هی یه دفعه اون آرشامتونن می‌خواستن بدن دیگه آره خودم شیندم میگفتن نهارشم شولم با ما مامان تو از کجا میتونی؟ به خدا باور کن خودم شیندم اون آقا کارگردانه داشت به آقا کاپلی می میگفت بپرسین ببینین خونه‌ش رو چقدر اجاره میدن بابا چی چی پول بگیریم ازش ما می‌خواستیم نمک کنیم نخشی چیزی کاش اغلن تلفن ماموث کامپریت گرفته بله باله و بعد آخر وسایل فیلمبرداری برداری را میارند خونه نوروز خان. آسنا ورماشین آچین بشو با رو ببین تو اینجا قربات میرید. قصه نباشید. کو با کی بخوام بیان بدم؟ نه؟ نه نه. نه. نه, نه. آقا آقای چافی به حال دیدم دستنهی گفته کمکش تو باز نکنه. مهران اتاق گیریم کجاست؟ قصم علی را میخورم. خاطی جون. ما تاق بالایی مال ما. بقیهش در شما. Arzadum مشکل نده. نه چه مشکلی بده؟ بخدا رحمتش. <تصفيق> حالا پولمون یکی میدید. میبخشی نه؟ خواهش الان یه قسط کوچولو ما تقدیم شما بقیه بقیه‌اشم آخر این ماه با هم حساب می‌کنید. مشکل نظر شما؟ نه، حالا چک کافی نمی‌شه. فردا صبح زود. اسم کتینتین چیه؟ ما خونه نیستی. انشاءالله که میشه خونه باشی. خیلی ممنون. دوند درخت نخوره زن نروز با خوشحالی <متده> مشغول شمردن هسکیناسه میگم آقا جو این چی که شما داری تون تون میش آره ها رو میشموردی معلوم یا حرس اخوشحالیه اچی اخوشحالیه. خیلی وقت بود که این همه پول درش مارده بودی نه میگم <متده> زنی زدن ستار راجعه به ساله میپرشتیدن ستار آره خیلی بچه خوبیه با تو کارشون همه بهش میگن ساله. بچه ای این اسمش پاکستانه و فکر میکرم اگه این سرمونی گذاری برای پروشه قرش جواب بده یه جوانه رو میتونی بکشیم به کار مثل حمید و دوستاشو اینا رو یه اشکال داریم شما رو چه کار کنم کاش کجا؟ شما کجا؟ آخ نوروز. این پول عاد این پول بخت من فکر اونجاشان کردن خونه رو میدیم اجاره ما هم کاشو شوخی میکنی؟ نه جدی میگم خونه رو میدن اجاره میام کاشو خواهرم سال تا سال دیگه یادم نمیکنه اس آقا نگران نباش بابا من بیدارم دوداش حمیدم که آمار گرفته بود میگفت کشت و پرورشگاش خیلی خوبه سود داره توش بچه شو چیه ته حمیده به آفتار جو ها چی گفتی؟ واقعاً می‌خاید یه کاشو یا نه من خیالات مرندیشتم. چونه درست. یه بار بگو. یه کاشو؟ ها خونه رو نمیفروشم میدم اجاره. همو مغازه‌ای که به اسمم نکردی دادی اون زلیل مرده رو خوردن برامو بس. خط رو خط افتاد و نمی‌رم. الو؟ الو؟ و اما حمید با ذوق و شوق میون عوامن صحنه میگرده و بعد میره کنار دستیار کارگردان میشینه و میگه: اه برامه روزانه اکس آنجونی من تست نبودم تو دفتر تونی اون جوابه شنوش نایمده چرا میاد تو راهش این جدی من جدی نیومده اگران ما بوشنید یواش یواش میرسی اخو من یه چند تاعت تو مدرسه کار کرده بودم میخواستم میرم یه نقش کوتا یک چیزی برای من مدنظر نداریم یه نقش کوتا حتی مثلا در حتی... باشه تو هم شو. خوبه. داماد خوبه. الان با یه اینا تو در شما راضی کنین بازی همین ازش به طرف مادرش میره. چی چاره زبای نافتت خودتت گم کردی؟ جنبی داشته باش مامی نسمت چه آدم بگو مامان. خب جونم ماما بفهم مگه تو پادگان نداری؟ هی دروبر این هم نه ولی به اون گفتم هتا کننده نامه میبرم بسش بعد این آقای کاپری همه قولده گفته حتما بهت نامه میدم بعد مامان جا من این کارو چنگ بزنم بعدش معروف میشم بعدش هم میرم دنبال سنم دیگه سنم؟ برای بر خودت میوری؟ برای خودت هم معروفه راست میگیم ببین برو دوربین مدرست تو بیش چهار تاکس باشم نمیشه که چرا؟ من صحبم تمام شده بقیش بر بچه هست بابا یه فیلم سی و میگیرم ببریم مدرسه بودایی من داخل اتاق گیریم گیریمار در حال آماده کردن بازیگریه که بیافش با نوروز خان مو نمیزنه نه مرد تدارکات چی؟ سینی چای رو تارفیم کنید سلام آقای خمسی بکنید سلام علیکم خیلی من دستش رو درد بکنید بفرمو شینی نه نمی خواهی همقایش بفرمو شینی بفرمو شینی سلام خواهیم بودرس سلام خسته نباشیم سلام هم بشیم و اما در اتاق گریم خانی بازیگر زنی که داره گریم میشه کاملا شبیه آفتاب زن نروس خانی سلام خواهیم سلام خسنه عکس بله در در خسته نباشید معلومه میتونم با تین یکس مندازن؟ بله حتما فقط اجازه بدهیم گرین چمیم شد خمسه سلام با سلام آی کاشی با زحمتهای ما چه زحمتی همش رحمت خدا ری شد. شد امکان داره ما یک یعنی عکس به شما عکس که نمیشه که نمیشون موقع مناسی سر از برای مطمئن بله بشمی برداشت گرفته میشن و به فیلم شروع میشه و اما این برداشت آقا مگه قرار نبود شما برای صحنه عروسی مثلا 60 تا اونرا غیر از خود آقای همین بود. آقا جودی. <تصفيق> <تصفيق> خیلی خوب شما بیارید ما عروسی رو می‌گیریم. دا بله. داری زور می‌گی. چرا آقا زور می‌گی؟ آقا, زور آقا زور دیگه من با مسئول صحبت کردم. مسئول اونرا من با سندی معرفی کردم. این شون کوتاهی کردن من چه دارم؟ آقا تفسیر شما شما آقا من مثلا شما آقا. آقا تا کارگردان به حالت قحمل داخل اتاق مردی به نوروز خان که کمی اون طرفتر استاده چای تارف میکنه قرار بوده از این لشکر سیایی بیارن نقش مهمون بازی کنم تو سحنه آخرشون که صحنه عروسیه. خب نه تونستن جور کنم افتادن بجونم واقعا همانی ها چه بود؟ چی؟ ما میره مهمون بازی می‌کنی؟ یعنی چه مگه ما بلدیم خانم پنج بابا چار پنگ روزهی دارم دوکات دوربین حریکرن این, این همین تو هم تحصیل گذاشته کجای دونه سنیفین برای سه چار نفر است که اینجا دوبومی جاشت بشه بابا خب بگم دختری کسیو نداره اصلا خانواده پسر ناراضی اصلا یک کدوم اشکستان دارم پر آره خودت یه قصهی داری میبافی چیت میمیکی آ میگم خدای نکرده کارشون نسله و نمیه بمونه نکنه پول ما رو ندارد نونس خواهن میره پیش کارگردان که تنها توی اتاق گیریم نشسته ببخشید اجازه میدیم خواهش بکنم بفرماییم آه. نه نخشد آقای کاشین سرسده ما باعث آزاره اذیت شما هم شد اخیار داری اینه یه تجربه است دیگه نه. من اومدم خلوت شما رو به هم ریختن نه خواهش بکنم واسه یه خاطره ای براتون تعریف کنم در خدمتم سالها پیش تو آران کاشو توی به قدیمی یه گروه فیلم برداری داشتن کار می‌کردن. داشتن یه فیلمی رو در میداشت خیلی قدیم سی سال پیش <تصفح> من یه نوجوان بودم از دور وستاده بودم اون کار اینا رو تماشا می کردم. چیزای قشنگی به هم می گفتن که من نمیفهمیدم. ولی یه جمله ای بود که قشنگ اون موقع فهمیدم و سی سال آبویز کوشنگ یادتون اون همجون با عنوانه. همیشهش فکر میکنم. جمله این بود به خشم خود میدان مده. به خشم خود میدان مده خیلی قش. وقتی بودم عصبانی؟ نمیتونی درست تصمیم بگیری. اینو میخواستم قد نظر داشته بله خرده در شاستی شاید؟ چطوری؟ بیتری؟ خوبم میگم فیلم بچه ها بگو سحنای دیگر رو بچیرم بگیریم تا ببینیم که برای جشن و عروسی چیکار میتونیم بکنیم بعد خدا بزرگیم بس بدم که بعد موفق خوشیم بگم که ازدتر کارگردان از جاش بلند میشه و از اتاق بیاره نوروز خان نگاهی به تصویر خودش تو آینه میندازه و میگه بخت بگر بخت بود خیال همه تخت بود نیمه شده آفتاب توی ایوون نشسته و سخت تو فکر فرو رفته نوروز میاد کنارش و میگه بس گفتم ساکت بیا میخوای بچه ها بیدار خیلی خواب حالا بگو آقاچون چی چیه چی چی چیه چی؟ ها بابا اگه اینو تموم نکنن نگیرن همشون خب پول مارم نمیدن خب دردمون همینه خب خب بابا یه من با بای کارگردان صحبت کردم ها. خیلی امیدوار شدیم که بتونن ادامه بدن گفتن بریم بگیریم خب فقط من هم صحنه سحنه مهمونی آخرش همون دیگه همون اصلی که نمیتونم بگیرم میخوای میگم نورس ها. نه نه خوب نیست نه این فکر اصلا خوب میگه ولی... بیا ای ای ای ها. نورس خواه یه خوب ها. ببین شده من کل پادگانو بیارم اینجا نمیذارم کارا نمیدون خواهرشم گوشهی در برس از بزن کل مرد سر پر میکنم فقط کافی این کبره فرمه تو این مادرشون رو بخوام بیان اشکال نداره؟ نه بس چی رو تایش بگو بیان بگو اصلا مادرشون بیان پدرشون می همه یه نفرم هم نگفت دو نفری بگو همه رو بگو بیان پس از فردا چوبه نزیم که فردا شب کنا مهمونیه ولی خیلی خوبه هم مهمونای ما هم مهمونای فی... سی نوروزخان رفته پیش مرد خیات همید رفته پیش دوستاش و زن نوروز هم رفته دم سوپر محله و مشغول صحبت با پیرزن زن همسایه است دختر نوروز هم بیکار نمونده و داره با دوستاش صحبت میکنه و اما حیات خونه خونهٔ نوروزخان همون موقع نوروز و زنش وارد حیات میشن نوروز داره با تلفن حرف میزنه نوروز و آفتاب با عجله میرن داخل اتاق. همه مردم محل در خونه نوروزخان جمع شدن و دارن داخل خونه رو تماشا می هر لحظهم لحظم به تعدادشون اضافه می شه آماده ایمت آماده صدا سرکانس 63 پلان 3 برداشت 1 صدا رفت برو دوربین. دوربی رفت بکه چا حرکت صالح چم اومدی از کاشو کاک کاک کاک کاک آی کاشی داشی میگرفی بفهم بشی بشی نه شما بفهم ما بگیر سلام علیکم همونجا که ارسی باش ما الان بابا یکی اونطور کنترل کنه من مزهت میگم صالح چم بگیریم آقا دارم یه بار دیگه سریع بگیریم آماده؟ آماده یه متشان صدا؟ صدا رفت دوربین؟ دوربین دوربی رفت حرکت کاژا کاژ بچا کاژو چھرا کاژ کارگردان میره در ساکت ساکت ساکت ساکت ساکت کارگردان من کارگردان نیستم دستیارشم بورسر بہونه هست از خاکشه خاک فور خاکسر فقرم نره فهمینه که چی توشه ما اخلاص ما رو دعوت کردن بیاین تو جشن چه جشنیه این بلنداری بود دوستان آره این بلنداریه چطور آره کنار اینکه چه دستت نه مگه اینجا منزل آقا نوروز نیست؟ بفهمین اینجا چه اینا Ya muhur görmedim. Çaş, çaş, aga narı vur. Narı vur. Ne hakkı misafir davet ediyor, kendisi de evde niye yok? Ya ben 5 yaşım. من çaş, çaş. Çaş, bir de çaş bir de zudu. Vallahi Afsar hanım ısrar kerdin. Şöyle خب قربونتو برم این همه بود دما که دوشی شما مگه برای صحنه آخر این برداریتون احتیاج به مهمون نداشتین نقاشه مهمون؟ آقا میتونی بگی بچه رو جرسو بچین همین امشب با همینو بگیریم بله آقا ما آماده بودو بودو آقا آقای دن بیار احمد ببخشیم ما قصد دخالت تو کار شما رو نداشتیم خواستیم یک کمکی کرده آخه. کارگردان به همراه نوروز و تهیه کننده گوشه ایست کارگردان صورت نوروزخانه میبوسه و اما بالاخره تداروی که مراسم عروسی برای فیلمبرداری برداری میشه داخل حیات می و چراغونی میکنن و میز و سندلی میچینن در استادو آقایون راهنمایی میکنه و آفتاب هم خانم ها را مدیریت میکنه. سلام <متصفح> خوش آمدید آقاییم بر بیام. بر سلام سلام خوش سلام سلام خوش شر شهر عدی بکنی بهکنیره خوم بابا رو هم خوش باشیم گفتم یه بارم ما سیهنا باشیم چی میشه ماده؟ هیچی؟ فقط قربونت برم بگو عکس منو خیلی خوب ب بله نوری خون وض میکردم خدمتیم که ما محصولو فقط تحویل شرکت ها میدیدیم خوبه مغضنا ها شرکت های توزیی شرکت های غذاسازی ایشاالله اگر خدا بخواد سری یه مسئول مشتری خودش رو پیدا میکنه. خیالت راحت باش باش صالح جون میگم شما برنامات ردیف کو ها جون یه چند روزی بعد از سال تحویل با هم بریم پارک یه نگاه به چشمه خریداری بندازیم ببینیم صداوار چطوره خیلیام چایت هم با شیر بخورم من برم اونور بر برمیگردم خیلی خوش اومدید خوب شما احوال شما خانوم این بر سلام سهرمیجا شما چطوری خوبصشا. خوبصشا. آقای اون بر خیلی ممنون بایش میکنم بگو بخشی سرم خانوم بله اولا که خیلی خیلی خوش آمدیم. بعدش هم که این راجع فرهنگ فلکلور مردم جنوب هستش و رسم و رسوماتش گفتم شاید به دردتون بخوره از اینترنتش کردم براتون چاپارک پیدا کردی؟ درد یه گوشه پای دردسری آریه گوشی ماشینو پا کرد. محمد؟ هم به معرفی نکردم. ایشون محمد نام زدم. ایشون هم پسر آقای کاشی. ساب که میخواسم باشم برم جنوب. نام زده محمد هستم. خارزدهای چهای چه مدارش؟ همه من اسم آها در هستورات مردون اون طرف هستی زنان من اون طرف هست. به بخش م... هم بدی من کامل میکنم میدم خدمتون همین اینجا چی کار میکنی آخه تو بودو بود این لباسه به پوش داماد شدی چونه من؟ بودو بودو میکر... برو این لباسه به پوش داماد شدی سیبیل ها رو برشون مردم سیبیله نمیشه ما داماده به سیبیل اه نفه یه دفعه دستیار کارگردان در حالی که کت و شلواری به دست داره میاد طراخ حمید. حمید آهسته میره جلوی دوربی و با احتیاط کنار عروس روی سندلی میشنه و سلام میده. نروزخان آفتاب و دخترش کمی اون طرفتر دارن همین رو نگاه میکنن. سلام. سلام. هستی؟ بله ممنون. بای بای یه آقایشون چه گریه میکنی میگو چقدر نباس دوماندی به شش میام بایی با بایی اصلا ما برم نمیشه بلاخره عشقیم امان دارم میگیریم بس آکیت میگیریم بس بس آکیت بس آکیت و فیلم برداری شروع میشه با مراسم عروسی همچنان برپاز <تصفيق> لالالا لالالا می با ان شبم داد می خونم بابا واران و یادر مقابل سفرهٔ هفسین ایستاده و داره با تلفن صحبت میکنه الو بله سلام عید شما مبارک چه عجب قدم به چش نوروز خونه نیستش اومده کاشو خاله معتوبه آره بره قارش خب ولی ما که خونه هستیم و <تصفيق> خوشوستون امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشین دوستانی که بنده را در تهیه این برنامه یاری کردند جناب آقای علی حاجی نوروزی صدا بردار جناب آقای فرشاد ها تهیه کننده و سردبیر و بنده هم نگین خواجه نسیر نویسنده و راوی برنامه امیدوارم که اوقات خوب و خوشی رو در پیش رو داشته باشین خداوند یار و نگهدارتون